دوستی روزی بود و روزگاری بود در دامنه کوهی در محل زندگی کبکا یک کبک زیبا و خوشرفتار بود که او را کبک خوشرو میگفتند و در میان همه کپها به زیبایی و دلفریبی معروف بود. صيادان که او را از دور میدیدند خیلی میخواستند او را به دام بیندازند و مرغان شکاری در هوس گرفتن او دلشان آب میشد. اما چون که خوشرو خیلی زیرک و دانا بود برای اینکه زیبایی و خوش او بلای جانش نشود هیچ وقت تنها به گردش نمی رفت و با مرغ‌های ناشناس رفت و آمد نمی کرد و چون احتیاط را از دست نمی داد، گرفتار نمی شد. یک روز که کبک خشرو در نزدیکی خانهش در دامن کوه می خرامید و بلند بلند آواز می و گردش می کرد، یک شاهین در هوا می گذشت و خرامیدن کبک را تماشا کرد و صدای خنده و آوازش را شنید. و چنان کپک را دوست داشت که دیگر طاقت دور شدن نداشت. شاهین با خود فکر کرد که هر کسی به داشتن دوستی مهربان و دلپسن نیازمند است و چه خوب است که من با این کپک زیبا دوست باشم و با هم بنشینیم و من های روزگار را با دیدار او فراموش کنم. او هم از همراهی و دوستی من سرفراز باشد. پس آهسته آهسته به زمین فرود آمد و قدم زنان به طرف کبک روان شد تا سر صحبت را باز کند کپک خوشرو، رو همین که نگاهش به شاهین افتاد خود را به شکاف سنگی رسانید و در آن پنهان شد شاهین آمد دم سوراخ سنگ و گفت ای کبک زیبا از من نترس که من دوستدار تو هم و اگر تا حالا از هنرهای تو قافل بودم امروز کمال و هنر تو بر من ثابت شد و می بینم که گفتار و رفتار تو قم از دل می برد و می خواهم از تو خواهش کنم که با هم دوست باشیم که دوستی و یگانگی فایده بسیار و لذت بیشمار دارد کبک آواز داد ای قهرمان کامکار دست از سر من بردار و برو پی کارت که من فریب نمی و تو هم کارت شکار کردن است برو یک نادان دیگر را گول بزن شاهین گفت ای کعب خوشرفتار همان همانطور که میگویی کعب در بیابان بسیار است و کار من هم شکار است اما هیله‌سازی کار ضعیفان است من که مردانگی و زور و هنر دارم هرگز زبان بازی نمی کنم کعب که جواب داد تازه اگر هم راست بگویی و از رفتار من خوشت آمده باشد این دلیل نمی شود که ما با هم رفیق باشیم و این مهربانی تو موقتی است زیرا تو مرغی گوشتخار هستی شاهین گفت میدانی که من از پیدا کردن خوراک آجز نیستم و بنابراین هرگز قصد بدی به تو ندارم و اگر ما با هم دوست باشیم و من به محبت تو دلگرم باشم برای تو هم چند فایده دارد اول اینکه چون همجنسان من می‌بینند تو رفیق منی و در پناه من زندگی می‌کنی آنها از ترس من به تو احترام میگذارند و هیچ وقت آزاری به تو نمی‌رسد دو اینکه خانه من بسیار باصفاست و من تو را به آشیانه خودم در بالای درخت میبرم و تو علاوه بر اینکه همه دشت و صحرا را تماشا میکنی چون کعب های دیگر همه روی زمینند مقام تو از هم آنها بالاتر می شود و تو میتوانی بر هم آنها افتخار کنی سه اینکه چون من توانا و توانگرم همیشه بهترین اسباب زندگی و بهترین خوراک ها را فراهم میکنم و روزها تو را با خود به گردش جاهایی میبرم که کعبک های دیگر آرزوی دیدن آن را دارند و نمیتوانند آنجا را ببینند کبک با شنیدن این حرفها و یاد آرزوهای خود قدری نرم شد و جواب داد اینها همه درست اما تو امیر و رئیس مرغان هستی و بر فرض که نسبت به من محبت داشته باشی ممکن است دیگران بر خوشبختی ما حسد ببرند و با حرفهای خود ما را از هم دل سرد کنند یا اینکه چون تو به مهربانی و رفتار آرام عادت نداری ممکن است روزی از من اشتباهی سر بزند و ناراحت شوی و آن وقت هیچ چیز نمی‌تواند مانع تو شود پس همین بهتر است که من به زندگی ساده و آرام خود بسازم و در آرزوی جاه و جلال خود را به دردسر نیندازم شاهین گفت عزیز من عجب حرفی میزنی مگر نشنیده ای که میگویند دیده دوستی جز خوبی نمی من قول می دهم که به حرف هیچ کس گوش ندهم و به هر کاری که تو می کنی به چشم محبت نگاه کنم و هرگز بر تو خشم نگیرم. آخر با صحبت و قول و قسم ها کپک به دوستی با شاهین راضی شد و از خانه بیرون آمد و با هم دست دوستی دادند. و یکدیگر را در کنار گرفتند و بعد از اینکه که از دوستی شاهین خاطر جمع شد بار دیگر از او قول گرفت و عهد و پیمان و قسم ها تجدید شد و آن وقت شاهین کعب را روی دوش خودش سوار کرد و او را به آشیانه خدا ورد تا چند روز همه جور پذیرایی کرد و مثل آدم هایی که تازه با هم آشنا می شوند از خوشی های بیشتر و بهتر آینده حرف ها زدند روزها کپک همراه شاهین به گردش صحرا و جنگل و دشت و کوه میرفت و از اینکه میدید وقتی با شاهین همراه است تمام مرغها از او حساب میبرند و بر خوشبختی او حسرت میخورند خیلی لذت میبرد و خوشحال بود. این بود که کپک بیش از همیشه به خنده و آواز و حرکات شیرین و نمکین می و هر دو از معاشرت یکدیگر غرق شادی بودند. و دنیا را فراموش می کردند، کم کم که به این زندگی خوش عادت کرد و گاهی کعب ها را مسخره می کرد و می گفت بیچاره، چه زندگی یک نواخت و خسته کننده ای دارند، همیشه توی سوراخ همیشه روی زمین، هیچ جا ندیده اند، هرگز بالای درخت نیامده اند. بود و بود تا یک روز که شاهین و کبک به گردش رفته بودند وقتی شاهین میخواست کبک را به آشیانه برساند، کم حرف میزد و هیچ نمی‌خندید. و وقتی هم کبک را به آشیانه برد او را با بیعتنائی به کنار آشیانه انداخت و کبک پایش درد گرفت کبک از این وز کمی ناراحت شد ولی فکر کرد که شاید شاهین در صحرا با کسی گفتگو کرده و حالش خوب نیست این بود که سعی کرد با خند و مهربانی شاهین را به حرف بیاورد ولی شاهین اخمهایش توی هم بود و هیچ حرف نمیزد کم کم کبک از این وضع ترسید و فکر کرد صد سال زندگی با چنین مرغی به این یک ساعتش ارزش ندارد و تقصیر از خودم است که به تمع جاه و جلال با ناجنس و با قوی تر از خودم معاشرت کردم حالا اگر از من بهانه بگیرد چه خاکی به سرم بریزم از غذا شاهین آن روز هرچه جست و جو کرده بود شکاری به چنگش نیامده بود و خیلی گرسنه بود و حالا که دیگر هوا تاریک شده بود و در صحرا چیزی گیر نمی آمد دنبال بهانه می گشت تا کبک را به بهانه ای خوراک خود سازد. کبک هم خیلی احتیاط می کرد که بهانه به دست او ندهد و بیش از همیشه با ادب و مهربانی رفتار می کرد. ناگهان شاهین به کبک گفت چرا ناراحتی؟ کبک جواب داد نه چیزی نیست در خدمت شما هیچ ناراحتی ندارد. شاهین گفت چرا نمی نشینی؟ گفت آماده ی هستم ولی حالا که می فرمایید مینشینم و رفت روبروی او با ادب نشست شاهین گفت چرا اینقدر خودت را گرفته ای و حرف نمی زنی؟ جواب داد چون شما کمتر حرف می زدید، فکر کردم شاید خسته باشید و بخواهید استراحت کنید هر طور که میل شما باشد رفتار می کنم. شاهین وقتی دید هیچ بهانه ای ندارد و حرفهایش با احترام پاسخ داده می شود چون از گرسنگی بیتاقت شده بود با خشونت به کپ گفت آیا سزاوار است که من در آفتاب گرما نشسته باشم و تو در سایه بنشینی؟ کپ جواب داد عزیز من یعنی چه؟ حالا که هوا تاریک است و شبست و آفتاب نیست این چه بحانه است که می گیری؟ کدام آفتاب؟ حالا که آفتاب نیست؟ شاهین اصابانی شد و کبک را در چنگال خود گرفت و گفت ای پر روی بیادب کار تو به جای رسیده که حرف مرا رد میکنی و میگویی من دروگو هستم و آن وقت تو سیر باشی و من گرسنه. این را گفت و کپک بیچاره را از هم درید و وقتی داشت گوشتهایش را میخورد میگفت آهان اصلا کبک برای خوردن خوب است ما خواستیم چند روز تفریح کنیم و این که نادان و ساده دل هم خیال کرد تا ابد می تواند با بازی هایش ما را سرگرم کند این بود عاقبت دوستی کپک ساده دل و شاهین شکاری